مصنوی معنوی مولوی برنامه هفتاد و سوم حیای دفعه مقبون شدن در بع و شراب، آن یکی یار پیامبر را بگفت که منم در بی ها با غبن جفت. مکر هر کس کو فروشد یا خرد همچو سهر است و زرا هم می گفت در بیعی که ترسی از غرار شرط کن سه روز خود را اختیار. که تانی هست از رحمان یقین هست تعجیلت ز شیطان لعین پیش سگ چون لقمه نانفگنی بو کند آنگه خورد ای معتنی او ببینی بو کند ما با خرد هم ببوییمش به عقل منتقد با تعنی گشت موجود از خدا تا به شش روز این زمین و چرخ ها ورنه قادر بود کو کنفیکون صد زمین و چرخ آوردی برون آدمی را اندک اندک آن همام تا چهل سالش کند مرد تمام گرچه قادر بود در یک نفس از عدم پرران کند پنجاه کس ایسی قادر بود که از یک دعا به توقف بر جهانت را، خالق ایسی بنتواند که او به توقف مردم آرد تو به تو این تعنی از پۀی تعلیم توست که طلب آهسته باید بی سکست جو یکی کوچک که دایم می رود نه نجس گردد نه گنده می شود زین تعنی زاید اقبال و سرور این تعنی بیزه دولت چون تویور مرغ کهی ماند به بیزه ای انید گرچه از بیزه همه آیت پدید باش تا اجزای تو چون بیزه ها مرغ ها زایند در انتها بیزه مار ارچه ماند در شبه بیزه گنجشک را دور است ره. دانه آبی با دانه سیب نیز گرچه ماند فرقها دان ای عزیز. برگها همرنگ باشد در نظر. میوه ها هر یک بود نوع دگر. برگ های، جسم ها ماننده لیک هر جان بر ریع زنده اند خلق در بازار یکسان می روند، آن یکی در زوق و دیگر درد مند همچنان در مرگ یکسان می رویم، نیم در خسران و نیم خسرویم و یافتن بلال رضی الله با شادی چون بلال از ظعف شد همچون هلال رنگ مرگ افتاد بر روی بلال جفت او دیدش بگفت وا حرب پس بلالش گفت نه نه و ترب تا کنون اندر حرب بودم زیزیست تو چه دانی مرگ چون عیشست و چیست این همه گفت و رخش در عین گفت نرگس و گلبرگ و لاله میشو گفت تا رو و چشم پرانوار او می گواهی داد بر گفتار او هر سیاه دل می سیاه دیدی ورا مردم دیده سیاه آمد چرا؟ مردم نادیده باشد رو سیاه مردم دیده بود مرآت ماه خود که بیند مردم دیده تو را در جهان جز مردم دیده فضا. چون بغیر مردم دیداش ندید، پس بغیر او که در رنگش رسید؟ پس جزو جمله مقلد آمدند، در صفات مردم دیده بلند گفت جفتش الفراق ای خوشخسال گفت نه نه الوه است الوه گفت جفت امشب غریبی می روی از تبار و خیش غایب می شوی گفت نه نه بلکه امشب جان من میرسد خود از غریبی در وطن گفت رویت را کجا بینیم ما گفت اندر حلقه خاص خدا حلقه خاصش به تو پیوسته است گر نظر بالا کنی نه سوی پست اندرن حلقه ذ رب العالمین نور میتابد چو در حلقه نگین گفت ویران گشت این خانه دریغ گفت اندر مه نگر منگر بمیغ کرد ویران تا کند معمورتر قوم انبه بود و خانه مختصر حکمت ویران شدن تن مرگ من چو آدم بودم اول حبز کار پر شد اکنون نسل جانم شرق و غرب من گدا بودم در این خانه چوچاه شاه گشتم قصر باید بهر شاه قصرها خود مرشهان را معنس است را خانه و مکان گوره بس است انبیا را تنگ آمد این جهان چون شهان رفتند اندر لامکان مردگان را این جهان بنمود فر ظاهرش زفت و به معنی تنگ بر گر نبودی تنگ این افغان چیست چون دوتا شد هر که در وی بیش زیست در زمان خواب چون آزاد شد زان مکان بنگر که جان چون شاد شد ظالم از ظلم طبیعت باز رست مرد زندانی ز فکر حبس جست این زمینو و آسمان بس فراخ سخت تنگ آمد به هنگام مناخ چشم بند آمد فراخ و سخت تنگ خنده او گریه فخرش جمله نه تشبیه دنیا که به ظاهر فراخ است و به معنی تنگ همچو گرمابه که تفسیده بود تنگ آیی جانت پخسیده شود گرچه گرمابه عریز است و طویل زانتبش تنگ آیدت جان و کلیل. تا برون نایی به نکشاید دلت پس چه سود آمد فراخی منزلت یا که کفش تنگ پوشی ای در بیابان فراخ می روی. آن فراخی بیابان تنگ گشت بر تو زندان آمدان صحرا و دشت هر که دید او مرتو را از دور گفت کو آن سهرا چلاله تر شکفت او نداند که تو همچون ظالمان از برون در گلشنی جان در فغان خواب تو آن کفش بیرون کردن است که زمان جانت آزاد از تن است اولیا را خواب ملک است ای فلان همچون آن کف اندر جهان خواب می بینند و آنجا خواب نه در آدم در می روند و باب نه خانه تنگ و درو جان چنگلوک کرد و ایران تا کند قصر ملوک چنگلوکم چون جنین اندر رحم نو محه گشتم شد این نقلان مهم گر نباشد درد زه بر مادرم من در این زندان میان آذرم مادر طب ز درد مرگ خیش می کند ره تا رحت بر ره زمیش تا چرد آن بر در صحرای سبز هین رحم که گشت این بر گبس درد زه گر رنج آبستان بود بر جنین اشکستن زندان بود حامله گریان ززه کین المناس وانجنین خندان که پیش آمد خلاص هر هرچه زیر چرخ هستند امهات از جماد و از بهیمه و وزنباد هر یکی از درد غیر غافلند جز کسانی که نبیه و کاملند آنچه کوسه داند از خانه کسان بل ما از خانه خودش کی داندان آنچه صاحب دل بداند حال تو تو ز حال خود ندانی. ای آمو. بیان آنکه که هرچه غفلت و غم و کاهلی و تاریکی است همه از تن است که ارزیست و سفلی غفلت از تن بود چون تن روح شد بیند و اسرار را به هیچ بود چون زمین برخواست از جو فلک نه شب و نه سایه باشد نه دلک هر کجا سایست و شب یا سایگه از زمین باشد نه از افلاک و مه دود پیوسته هم از هیزم بود، نیز آتش های مستنجم بود و هم افتد در خطا و در غلط عقل باشد در اصابت ها فقط هر گرانی و کسل خود از تن است جانز خفت جمله در پریدن پر است روی سرخ از غلبۀی خونها بود روی زرد از جنبش صفرا بود رو سپید از قوت بلغم بود باشد از سودا که رو ادهم بود در حقیقت خالق آثار اوست لیک جز علت نبیند اهل پوست مغز کو از پوست ها آواره نیست از طبیب و علت او را چاره نیست چون دونبار آدمی زاده بزاد پای خود بر فرق علت ها نهاد علت اولا نباشد دین او علت جزبی ندارد کین او میپرد چون آفتابن در افق با عروس صدق و صورت چون تطق بلکه بیرون از افق و از چرخ ها بی مکان باشد چو ارواح و نها بل اقول ماست سایه های او میفتد چون سایه ها در پای او مجتحد هرگه که باشد نس شناس اندر آن صورت نینده شد قیاس چون نیابد نس اندر صورت از قیاس آنجا نماید عبرت ای. تشبیه ناس با قیاس نس وحی روح قدسی دان یقین وان قیاس عقل جزوی تحت این عقل از جان گشت با ادراک و فر. روح او را کی شود؟ زیر نظر لیک جان در عقل تأثیر کند زن اثر آن عقل تدبیر کند نوه وار ار صدق زد در تو روح کویمو و کشتی و کو تو نوح عقل اثر را روح پندارد و لیک نور خور از قرص خور دور است نیک زان با قرص سالک خورسند شد تازه نورش سوی قرص افگند شد زان که این نوری که اندر سافل است نیست دایم روز و شب او آفل است بانکه که اندر قرص دارد با شجا غرقه آن نور باشد دایما نه صحابش ره زند خود نه غروب وارهید او از فراق سینکوب اینچنین کس اصلش از افلاک بود یا ما بدل گشت گر از خاک بود زان خاکی را نباشد تا به آن که زند بروی شعاش جا ودان، گر زنت بر خاک دایم تا به خور آن چنان سوزد که ناید زو سمر دایم اندر آب کار ماهی است مار را با او کجا همراهی است لیک در کوه مارهای های پرفنند اندرین یم ها می کنند مکرشان گر خلق را شیدا کند همز دریا تا سشان رسوا کند وندراین یم ماهیان پرفنند مار را از سحر ماهی می کنند ماهیان قهر دریای جلال بهرشان آموخته صهر حلال پس ماحال از تاب ایشان حال شد، نحس آنجا رفت و نیک فال شد. تا قیامت گر بگویم زین کلام، صد قیامت بگذرد وین نا تمام. آداب المستمعین اندفیزل حکمت من لسان شیخ برملولان این مکرر کردن است نزد من عمر مکرر بردن است شمع از برق مکرر بر شود. خاک از تاب مکرر زر شود. گر هزاران طالبند و یک ملول از رسالت باز میماند رسول این رسولان زمیر رازگو مستمع خواهند اسرافیل خوب نخوت دارند و کبر چونشهان چاکری خواهند از اهل جهان تا ادبهاشان جاگه جاگهناوری از رسالتشان چگونه برخوری؟ کی رسانند آن امانت را به تو تا نباشی پیششان راکه دو تو؟ هر ادبشان کی همه آید پسند کامدندهشان، ز ایوان بلند نی گدایانند که از هر خدمت از تو دارند ای مزور منتی لیک با بی ها ای زمیر صدقه سلطان و وامگیر اس به خود را ای رسول آسمان، در ملولان من گرو اندر جهان، فرخان ترکی که استیزان هد، اسپشن در خندق آتش جهد، گرم گرداند فرس را آنچنان، که کند آهنگ اوج آسمان، چشم را از غیر و غیرت دوخته همچو آتش خشکتر را سوخته. گر بر برو عیبه کند آتش اول در پشایمانی زند خود پشایمانی نروید از ادم چون ببیند گرمیه صاحب قدم شناختن هر حیوان بوی ادوی خود را اسب دانت بانک و بوی شیر را گرچه حیوان است الا نادر را بل عدوی خیش را هر جانور، خود بداند از نشان و وز اثر روز خفاشک نیارد برپرید شب برون آمد دزدان و چرید از همه محرومتر خفاش بود که عدوی آفتاب فاش بود نتواند در مسافش زخم خرد، نه به نفرین تاندش محجور کرد آفتابه که بگرداند قفاش از برای غصه و قهر خفاش غایت لطف و کمال او بود، گر نه خفاشش کجا مانع شود؟ دشمن گیری به حد خیشگیر تا بود ممکن که گردانی اسیر قطره با قلزم چو استیز کند ابلاست او ریش خود برمی کند هیلت او از سبالش نگذرد چنبری حجره قمر چون بردرد با عدوی آفتاب این بود اتاب ای عدوی آفتاب آفتاب ای عدوی آفتاب کس فرش می بلرزد آفتاب و اخترش تو عدوی او نی خسم خودی چه غم آتش را که تو هیزم شدی ای عجب از سوزشت او کم شود یاز درد سوزشت پرغم شود رحمتش نه رحمت آدم بود که مزاج رحم آدم غم بود رحمت مخلوق باشد غصه رحمت حق از غم و غصه است پاک رحمت بیچون چنین دان ای پدر ناید اندر وهم از وی جز اثر برنامه های مصنوی معنوی مولوی را مینوکتاش و شهباز ایرج دهیه و اجرا کردن